بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد و اله وصحبه اجمعين بحمد الله تعالى نحن كراما عدنا مخارج عن مخرج النسوم و تا هنوز تعداد از مخرج های در زبان رو خوندیم درستا؟ و این گوز میتونیم مخارجی که مربوطه لسان میشه رو تمام کنیم از جهت عدد چند شماره خواندیم؟ خوندیم؟ نه نه چند تا مخرج از زبان, زبان. چند تا؟ پنج تا آه، زهر, زهر لسان اول چهار، زهر لسان دوم پنج بوده، درستن؟ پس امروز از ششم شروع می‌کنیم بگه شش طرف و نون مع مع اصول التنا یا العليا و من هو تخرج النون نوشتیم آره خب بونو خورا مخرج ششم از مخرج زبانی ما یا لسانی ما طرف لسان این طرف لسان باز هم که امروز اصول صنایه داشتیم با بخ همون دندان های با هم نزدیک میشن و ارتباط پیدا میکنن صنایه غلیه دیگر، صنایه بالایر خب میدنیم دیگر ارتباط پیدا میکنن و با ارتباط پیدا کردن طرف لسان با اصول صنایه بالا نون تولید میشن سه شد؟ سآل این است. این طرف لسان در کجاست؟ نگاه این اینو ببینین اینجا. این زبان هست. آره؟ رأس زبان کجا بود؟ این قسمت دیگه نه؟ رأس و لسان نمیشتم شده. صحیح؟ زهر لسان هم دیروز خواندیم گفتیم بالاتر از چیه؟ بالاتر از رأس لسان طرف لسان در کجاست؟ طرف لسان دقیقاً میشه گفت بین زهر و بین رأس هست بین زهر و بین رأس مثلا ببین اینجا که رأس باشه، اینجا که زهر باشه، طرف این قسمت فاهمیدیم؟ همون تصویر که در چی، تلگرام گذاشته شده، همور همراه خود داشته باشیم که متوجه بشیم پس این قسمت هست، رأس و لسان یه قسمت هم که زهر و پوشته دیگه نه؟ و اینجا هم طرف لسان همو طرف لسان با اصول تنوایه اینجا درست؟ با اصول یعنی قسمت تنوایه بالا چکار کار میکنه؟ متصل میشه و با این کار نون تولید میشه حالا بگه نون؟ نون واضحه دیگه نه؟ خوب دقیق فاهمیده که سر یعنی لوک زبان نمی درست؟ بلکه او قسمتی که جای حرف قا و و داله او قسمتم نیست بلکه دقیقا بین حرکتشون صحیح آه پس این مخرج ششون مخرج یکی سؤال نه نیست دیگه واضحه مخرج هفتون از مخارج دهبانه در لسان گفت که به یه چیز نیست، پرافولسان، پرافولسان خورده با بیخ سنایه بالا و میپوی. یعنی از این پرافولسان تفرجون خارج میشود اینها رو بده لازم نسک بینیشون عدد آره، عدد هفته میتونیم مرگویم این طرف بله حرف اللسان مع اصول ثنای الغلیا دقیقا به همه مع اصول ثنای الغلیا الغلیا قریب من بر و من تخرج راق و من هو تخرج راق و من تخرج راق و تخرج و را نوشتیم خب همطوره که واضح دیگر یه دفاع باز هم هم و طرف اللسان هست با بیخ دندان های صنایه یعنی با متصل میشن قریب میشن دارست شد؟ قریب میگه قریبا من از زهر. این دفعه که هست نون ری نیست بلکه نزدیک به زهر لسان هست. یعنی همون جای طرف زبانی نزدیک به زهر فامیدم دیگه نه؟ گفتیم این قسمت رس، این قسمت زهر، این قسمت طرف. یعنی طرف یک دفعه نون خالی صدا میکنیم یک دفعه ری میگیم وقتی ری گفتیم یا را، این را چیز بالاتر این نزدیک به زهر گفتیم. انجام میشه. واضح یا نه؟ آره؟ ها. مع وصول الثنايا العلیا با ریشه دندانهای ثنایای بالا نزدیک به زهر لسان. نزدیک به زهر اللسان. آره؟ و من هو تخرج را و از اینجا حرف را ادا میشه خارج میشه. همگی فهمیدیم تەسسؤل ندارم قریب میشه رو نه قریب نزدیک نزد قریب من زهر قریب من زهر یعنی نزدیک به زهر لسان فهمیدیم قریب من زهر یعنی نزدیک به زهر لسان قسمت زهر لسانو خود می‌دونیم دیگه نه آره آه آه. یک نفر حدی سوال جواب بدین خام <تصفح> <تصفح> احسن ده مراد شدید اصف زی دوان با اصول با اصول فنهای نگاه کنین بگین را بعض یا هستن که ر گفته نمیتونه بلکه یا از پیشش برست اونایی که ر گفتن نمیتونه یک دقیقا همین مخرج رو پیدا کنه متوجه میشه؟ یک مخرج رو پیدا کنه یک اوصاف حرف ری را وقتی بهش بدن ر میشه از جمله واسفه تکریر هست یعنی ر یک قسم تکرار میشه درست این اوصاف رو وقتی بهش بدن می که حرف ر رو درست ادا کنند حتما دیدیم دیگه بجیار که ره نمیتونه بگه یه میگن درسته؟ یه درست سهر قسمت واضح هست یعنی مخرج هفتم کسی مشکل نداره. خیلی دارد کل مخرج لسان ده تاست چند تاش خونده؟ باید که چند سه مخرج هشتون رو بینویسیم رأس اللسان لسان اصول ثنای الغلیا هشت رأس و لسان اصول مقه اصول الغلیا الغلیا و من تخرج تخر و می‌نو، تخرج زاویه ز، براش چی؟ و می‌نو، تخرج زاویه ز یا دو نکته بی نهیم و سادو و سادو و, سن و سن ماشین ماشین رأس و ها این دفعه دیگه در رأس رسیدی، درست؟ در نوک دیگه. دیگه. یا سر زبان سر زبان با بیخ سنایه قلیان، نگفته در خود دندان درست؟ بلکه باز در بیخ، در های بالا، وقتی چون اصابت باوجود وجود به با من دقت کنید اینا که با زیاد بگره. وقت نوک زبان با ویخ دندان های بالا نزدیک بشه و اصابت کنه سه حرف وجود میده یکی ز، یکی هم ساد و یکی هم سین درست شد؟ ز، زا، زا بگیم دیگه هم، را زا یا نه؟ زا، ساد، سین این داره که بین ز و سین و ساد وجود داره، خواه؟ بین سین و زه که انشالله همکه میتونیم فرق بگذاریم فقط باقی میمونه صاد. حرف ساد را وقتی ادا کردیم اگر دهن پر از هوا شد میشه صاد و ایلا میشه سین درست؟ همون سین را که بگیم ولی دهن پر از هوا بشه یعنی تفخیم بشه میشه صاد. فرسه یک بار بگیم صواد صواد صواد صواد خوبه خوبه صحیح شد سیم خیلی راحته دیگه سیم ها وقتی میگیم صواد باید دهان پر از هوا بشه صواد صواد فرسه آره پس مخرج حترم تمام احسن خیلی آره میرهیم روی مخرج نوهوم این نوهوم هم من بوده هست؟ آه، نوهوم در آره این مختبه، نوهوم را بینویسیم حافت و لسان آه، حافت و لسان؟ آه، حافت و لسان آه حافت تمام حافت و لسان این حافت و لسان، معنیشون را هم در عربی بینویسیم ای جانی بهی ای ای انطور خواه جانبی جانبی ای جانبی اینه مکدره این معلی خواهه خواه معلی خواهه یعنی جانب جانب رو میداریم نه؟ اگه جانب رو نمیفهمیم کنار ای کنار مع انفصاقه نعم مع التصاقه لا. مع التصاقه نعم بما انفص معقوله مع التصاقه بما يحيط بم بما بين بما به بما ما بما يحاديه من الأبراز من الأبراز من الأبراز بالسر يحادي يحادي ظل يحاديه من الأبراز الگلیا الگلیا و من هو تخرجو و من هو تخرجو عباد ما داریم حافت و یعنی کنار زبان رو کنیم درست خب یک سمت زبان یا یک جانب زبان وقت یک جانب زبان منتصف شود منتصف یعنی چسبیده، بیچسبد خود ارتساق، چسبیدن هست مقه ارتساقه یعنی همون که حافتولیسان یا جانبولیسان، یا یک کنار زبان بیچسبد، در چی بیچسبد؟ بی ما یحادی هست و اون چیزی بیچسبد که دقیقاً دو اونو قسمت زبان قرار داره مثلاً ببین به سمت چب زبان به کنارشی، درست؟ وقتی بخواه بیچسبه در بالا بالا که بیچسبه دندان وجود داره. از این از دندان از راست یا زیرسی حالا اونجا باز میبیند، برست؟ واضح ها دیگر، نه چیزی هم نیسته برست؟ یک جانب زبان، چه راست باشه چی چب باشه فرق نماشه، خان؟ چی راست، چی چپ؟ به دندون های زرسی و بالا چسبی با اینوی چسبیدن یک حرف تولید میشه و اونم حرف زاد هست سخترین حرف همین حرف است که حتی ما یک روایت هم داریم میگه که پیامبر میفرمایه که من فسخترین شخص هستم که در بین عرب حرف زاد را ادا میکنم لذا امروزه راجع به حرف زاد بحثایی که هم واضحه هست حتی بعضی ها میگن که ذات همون دال ریادا میشه منطقا با حالت تفخیم وقتی دال تفخیم میکنیم موش زاد بزرگ بارها در مسجد هم و جای جای شنیده شدن اینا که میگن چرا دیگر ها میگن ولی دال بین ولی دال نمیگه خب ولی میگه ولی اونجا چون که چی هست رقم دال رگاهی میشه دقیق میکنیم؟ این حرف زاد هست چیزی که به اینجا توجه نه حالا اوصافش رو انشالله بعدا میخوانیم ما میتونیم حرف زاد را از طرف راست یعنی با چسباندن کنار زبان در دندان های زرسی بالا از طرف راست این کار را جا بودیم یا از طرف چپ. فرق نمیشه. ولی اگر کنار زبان را نویشتم اگر کنار زبانی سمت چپ را بدندان های زیرسی و بالا بچسبانیم حرف زاد راحتتر تر ادا میشه و بیشتر چونین میکنه حالا ببینین امیک چیز تمرین کنیم اول خب اول تا راحت کنار زبان را بدندان بچسبانیم سعی کنی فرض میگیره این قسمت زبانه خوب دقت کنین ساکن ایشیم که این این زبان باشه خو دان دو زیرسی اینه دیگه می تایی خویم یه نمی قسمتی که حافظه لسانی یا جونی بلسونه با دان دو نه زیرسی بالا بیشتر دنی در بالا بالا سه شد حالا بیکن باد باد آه خوب خوب کبر ها سخت هست این حرف ببین این حرف حتی برای خود عرب ها سخته چی برسه به ما و شما درست ولی با اثر با نختیش با اثر تمرین میشه آدم یاد بگیره درست یک بار دیگه هم بگیم بود بود بود بود با می مو بی یعنی با ما چیزی که اون چیز چه هر چی که باشه یا خادهه یعنی مساوی, مساوی همون جانب زبان قرار مساوی این قسمت زبان در بالا دندانهای زیرسیه دی. از راست زیرسیه از راست دندانهای زیرسیه حالا باز میگیم شد؟ بله خب، تمام کسی مشکل نداره؟ و آخرین مخرج از مخرج نسان باز هم حافت و نسان هست شماره ده خافتون لزم الامومیه مع التصاقها مع التصاقها مع التصاقها بما یحادیها بما یحادیها من الاسنون و مرگو تخرج لام تمام شد؟ نوشته میره؟ خب ببینین حافت اللسان الامامیه یعنی زبان کنارش منطق کدام قسمت این دو طرف نه بلکه پیشروی امامی یعنی پیشروی برست شد؟ جانب یا کنار پیشروی زبان ملتشق شده بچسبه به ما یحادی ها با او چیزی که دقیقا در برابر و مصاوی کنار پیشروی زبان قرار داره از چی از اسنان یعنی از دندان ببین این مثلا این قسمت باشه طرف خواه؟ طرف نباشه حفظت لسان اینجا و به این بره ای به دندان بالا که اینجا هست بچسبه بایانه میکرد میشه؟ لام توبید میشه. لام؟ لام. سعی راحت دیگه. آره. تمام کسی سوال نداریم؟ خیلی نداریم. حالا این چی رو که فرصت نگیریم. سعی این اسنان هست خو در عربی دندان را چی میگن اسنان این اسنان هست که بله خانم حسینی کشیدن در اسنان کل دندان چی مقدار هست یا نیست تقریبا اکثر انسان ها از نظر تعداد ممکنه یکی یک عدد خاصی داشته باشه ولی بعضی ممکن است هم زیاد داشته باشه یعنی ممکن هست ما دندان را که حساب میکنیم از پیش روی حساب می‌کنیم درست دوتای بالا نامش هست سنایا دقیقاً همین دو تا دو پایین باز هم هست نامش سنایا منتهایه علیا اینش سوسنو سعی شد؟ سفلو یا دو تا اینجا، دو تا اینجا، چند تا شد؟ چارده. چارده. بعد سنایه روباعیات هست، روباعیات یعنی همون چاردانه ای. درست این یک، این دو یعنی در دو تا کنار بندان های سنایه درست؟ آه، باشی که ما تصویر در چی بگذاریم؟ داریم یک تصویر بگیر و خب، دکت میکنید این سنایه بالا و سنایه پایی یک رباعی، دو رباعی درست شد؟ سه رباعی، چار رباعی پس رباعیات چه؟ علیا و رباعیات صفیه درست؟ خب، این دو، دو، چار، چار دیگه هم اینجا چند شد؟ هشتا در کل چند تا شد؟ هشتا خوب تمام شد؟ پس سنایاب واضح شداره؟ روباعیات هم واضح شد؟ آه. میرسیم بعد از روباعیات انیاب هست انیاب هم دقیقا در کنار چی؟ روباعیات قرار است در کنار سنایاب و انیاب هم در کنار روباعیات صحیح شد؟ صحیح. خب، این یکی، اینم دوتا. دو تا سه تا؟ چهار تا خب پس چهار اول داشتیم چهار دوم هشت، چهار سوم دوازده سنایات چهار روبائیات هشت انیاب؟ دوازده میرسیم در زواحه در دندان خنده آها. سعی شد؟ آده خب اینم دقیقا هموتوه چهار تا دوازده شده بود نه شانده. شانده. شان، شانده. بعد از این بعد از این دندان زواحد از راس است راس از راست. است این طرف از راس طرف از راست، این طرف از این طرف از درست آره تو تو دندان تا چند شده بیست هشت میشه, 28 میشه؟ خب این چهار دیگه که نواجز هست اینم حساب کنیم؟ این مجموعی دندان خب در دندان ها در خروج یا ادا کردن درست حرفها ها نقش مهم میداره این کسایی که دندانی پیش روی نداشته باشه یا دندانی جانبی نداشته باشه ممکنه در ادا کردن حروف به مشکل بشن باید باره باره دندانی بشن <تصفيق> سعی شد؟ آره خب پس بنابراین دقت کنیم ما این دوزم از حروفی که صعبه هست یعنی بر ما عجم پاسخته خوندیم خون؟ اینا باید تمرین کرد و یاد گرفت خب کسی سوال دارم نداریم با الله علیه و سیدنا محمد و, و آل